داستان چگونه سه برادر گنجینه پدر پیرشونو به دست آوردند در روزگاران قدیم مردی بود که سه پسر داشت او آدم پرتاقتی بود و کار رو خیلی دوست داشت و هیچ وقت بیکار نبود هیچ وقت خسته نمیشد، صبحها خیلی زود از خواب بلند می و شبا هم مدتی به کار مشغول بود و دیر وقت به خواب می رفت. به همین خاطرم توی زندگیش پیروز و کامیاب و خوشبخت بود. پسراش بزرگ و قوی شده بودند، اما هرگز به هیچ کاری علاقه نداشتند. پدر به امور مزرعه و باغ و خونه مشغول میشد. در حالی که پسراش یا توی سایه درخت ها می نشستند یا با هم دعوا می کردند یا به طرف رودخونه می رفتند و گاهی ماهی سید می کردند. همسایه ها ازشون میپرسیدند. چرا کار نمی کنید؟ چرا به پدرتون کمک نمی کنید؟ اونا در جواب می چرا باید کار کنیم؟ پدر داره به جای ما کار میکنه و به تنهایی از عهده هر کاری برمیاد. سالها گذشت اونا هم به همین و زندگی کردند اما کم کم بزرگ شدند و پدر پیر و ناتوان شد و برخلاف گذشته از عهده کارها بر نمی اومد پدر ازشون پرسید بچه های من چرا تن به کار نمیدید؟ موقعی که من جوان بودم شب و روز کار می کردم حالا نوبت شماست که باید کار کنید. پسرا گفتند ما وقت زیادی برای کار کردن نداریم. پدر از اینکه میدید بچه‌هاش تنبل هستند خیلی ناراحت بود، قصه می‌خورد و بالاخره مریض شد و بستری شد. از اون روز بدبختی بزرگی به خانواده‌ی اونا روی آورد. باغ غیر قابل استفاده شد. علفهای هرز زمین و مزرعه رو گرفته بود به طوری که آدم به زحمت میتونست خونه رو پیدا کنه یه روز پیرمرد پسراش خواست و بهشون گفت بچه های من هنگام مرگم فرا رسیده ولی نگران کار کردن شما هستم نمیدونم چطوری بعد از من از پس زندگی برمی آید شما که به کار کمترین علاقه ای ندارید و نمیدونید چه کار باید بکنید پسرا خیلی نراحت شدند و شروع کردند به گریه کردند. پسر بزرگ گفت، پدرجان به هر حال قبل از مرگ خودت هر سفارشی داری به ما بکن. پدر جواب داد، خیلی خوب، همین حالا رازی رو براتون فاش میکنم. شما می دونید که من و مادر بیچارهتون شب و روز کار کردیم و لحظه از کار دست نکشیدیم. و به این ترتیب تونستیم در طول سالها با زحمت و مرارت و مشقت برای شما یه ظرف پر از طلا فراهم کنیم. من این ظرف رو اطراف خونه زیر خاک قایم کردم ولی جاش رو به طور دقیق یادم نمیاد. شما باید این گنجینه رو پیدا کنید. وقتی اونو رو به دست آوردین بدون اینکه به کسی احتیاج داشته باشید میتونید با طلای اون زندگی خودتون رو به و به خوشی ادامه بدید. پدر با پسرا خداحافظی کرد و بعدش مرد. بچه ها با ناراحتی پدر خودشونو دفن کردند. بعد برادر بزرگ گفت برادرا ما وضع بسیار بدی داریم. حتی به نون شب محتاجیم. شما یادتون میاد که پدر پیش از مرگش به ما چی گفت؟ پس همین حالا سعی کنیم تا این ظرف طلا رو پیدا کنیم. هر کدوممون کلنگی باید بگیریم دستو به کندن اطراف خونه مشغول بشیم. اونا این کارو کردند اما هیچ کدوم ظرف طلا رو به دست نیاوردند. برادر دومی گفت: برادرا اگه به همین ترتیب زمین رو بکنیم بدون شک به گنج نمی‌رسیم. بهتره نه فقط اطراف خونه بلکه سایر قسمت‌های مزرعه رو هم بکنیم. دو برادر دیگه پیشنهادشو قبول کردند و کار خودشون از سر گرفتند. تمام زمین ها رو کندند. ولی بازم نتونستن اون گنج رو پیدا کنند. برادر کوچی گفت پس زمین رو بیشتر بکنیم. شاید پدر ظرف تلا رو اون قسمت های پایین زمین چال کرده. دو برادر دیگه موافقت کردند و دوباره سه نفر به کار افتادند و برای به دست آوردن ظرف طلا همه جای زمین رو با عمق بیشتر کندند. وقتی برادر بزرگ زمین رو میکند، ناگهان بیل به یه چیز خیلی سختی برخورد کرد. قلبش شروع کرد به زدن، خوشحال شد و بقیه رو خواست و گفت بیاید عجله کنید، گنج پدر پیدا شد. اون دو برادر سریع اومدند و به برادر بزرگ خودشون کمک کردند. مدتی زمین اون حدود رو کندند، ولی به جای ظرف طلا با سنگ بسیار بزرگی روبرو شدند. بعد با خودشون گفتند: چه اشتباهی با این سنگ چه کار باید کنیم؟ نباید اونو اینجا بذاریم لازم اونو به جای دیگه ببریم؟ مهمترین کاری که کردند سنگ بزرگ و برداشتند و دوباره به کندن زمین پرداختند. روزها تا وقت شب کار می کردند و از استراحت چشم می پوشیدند. و دوباره تمام زمین رو میکردند و زمین بر اثر کندن زیر و رو شده بود و کاملا نرم و سبک بود ولی هنوز ظرف طلا به دست نیومده بود برادر بزرگ گفت حالا چه کار باید کنیم اینجوری ما زمین رو شخم زدیم پس بیاید لا یه چیزی بکاریم چه بهتر که درش ما بکاریم دیگران نظرش رو پذیرفتند و گفتند اقلن از کار خودمون یه نتیجه میگیریم. همه جا رو درخت مو کاشتند و مدتی ازش مراقبت کردند. چند سال گذشت، موها بزرگ و قشنگ شدند، خوشه شیرین و پر آب دادند و بعد از مدتی برادرها از این را محصول فراونی به دست آوردند و اونچه رو که احتیاج داشتند برداشتند و بقیه رو فروختن و ثربت فراوی آیدشون شد. بعد برادر بزرگ گفت، کندن زمین و زیر و رو کردن خاک ها به نفع ما تموم شد. چون با یک گنجینه پر ارزش روبرو شدیم. این همون گنجینهیه که پدر ما قبل از مرگ دربارش سفارش می کرد.